مصنوی معنوی مولوی برنامه پانزده هم نصیحت کردن زن مرشوی را که سخن افزون از قدم و مقام خود مگو زن برو زد بان که نامو کیش من فسون تو نخواهم خورد بیش تو رهات از دعوی و دعوت مگو رو سخن از کبر و وزنخوت مگو چند حرف تمتراق و کار و بار کار و حال خود ببین و شرم دار کپر زشت و از گدایان زشتر روز سرد و برف و آنگه جامت تر چند دبی و دم و باد و برود ای تو خانه چو بیت الانکه بود از قناعت کی تو جا از قناعت ها تو نام آموختی گفت پیغمبر قناعت چیست گنج گنج را تو و نمیدانی زرنج این قناعت نیست جز گنج روان تو مزن لاف ای غم و رنج روان تو مخانم جفت کمتر زن بغل جفت انصافم، نیم جفت دغل چون قدم با میر و بابگ میزنی چون ملخ را در هوا رگ میزنی سگان زین استخان در چالشی چون نه اشکمتهی در نالشی سوی من منگر بخاری سوست سوست تا نگویم آن چه در رگهای توست عقل خود را از من افزون دیده ای مرمن کم عقل را چون دیده همچو گرگ غافل اندر ما مجه ای زننگ عقل تو بی عقل به، چون که عقل تو عقیل مردم است، آن نه عقل است آن که ما رو کشدم است خسم ظلم و مکر تو الله باد فضل و عقل تو زما کوتاه باد هم تو ماری هم فسونگر ای عجب مارگیر و ماری ای ننگ عرب زاخ اگر زشتی خود بشناختی همچو برف از درد و غم بگداختی مرد افسونگر بخواند چون ادو او فسون بر مار و مار افسون برو او گر نبودی دام او افسون مار کی فسون مار را گشتی شکار مرد افسونگر زهر سه کسب و کار در نیابت آن زمان افسون مار مار گوید ای فسونگر هین و هین آن خود دیدی فسون من ببین تو بنام حق فریبی مرمرا تا کنی رسوای شور و شرمرا نام حقم بست نه آن رای تو نام حق را دام کردی، وای تو. نام حق بستاند از تو داد من. من به نام حق سپردم جان و تن. یا به زخم من رگ جانت برد. یا که همچون من به زندانت برد. زن از این گونه خشن گفتارها، خاند بر شوی جوان تو مارها نصیحت کردن مرد مرزن را که در فقیران بخاری منگر و در کار حق به گمان کمال نگر و تنمزن بر فقر و فقیران به خیال و گمان بینوایی خیشتن. گفت ای زن تو زنی یا بلحزن فقر فخر آمد مرا بر سر مزن مال و زر سر را بود همچون کلاه کل بود او کس کلاه سازد پناه آنکه ظلف زلف جد و رانا باشدش، چون کلاهش رفت، خوشتر آیدش. مرد حق باشد به بمانند بسر، پس برهنش به که پوشیده نظر. وقت عرضه کردن، آن برده فروش، برکند از بنده جامع عیب پوش، ور بود عیب برهنکی کند، بل بجامه خود ای باوی کند، گوید این شرمنده است از نیک و بد، از بره کردن او از تو رمد. خواجه در عیب است غرقه تا بگوش، خواجه را مال است و مالش عیب پوش. کس تمه عیبش نبیند تامعه گشت دلها را تمه ها جامه ورگدا گوید سخن چون زرکان ره یابد کاله او در دکان کار درویشی ورای فهم توست. سوی درویشی به منگر ساست ساست. زن که درویشان ورای ملک و مال روزی دارند جرف از زل حق تعالی عادل است و آدلان کی کنند استمگری بر بیدلان آن یکی را نعمت و کالا دهند و این دگر را بر سر آتش نهند آتشش سوزا که دارد این گمان بر خدای خالق هر دو جهان فقر فخری از گذاف است و مجاز نه هزاران از پنهان است و ناز از غذب بر من لقبها راندی یارگیر و مارگیرم خواندی گر بگیرم برکنم دندان مار تاش از سرکفتن نبود زرار زان که آن دندان عدوی جان اوست من عدو را میکنم زین علم دوست از تمع هرگز نخوانم من فسون. این تمع را کردم من سرنگون. هاشل لله تمع من از خلق نیست. از قناعت در دل من آلم است. بر سر امرود بن بینی چنان زان فرودا تا نماند آن گمان. چون که برگردی و سرگشته شوی، خانه را گردندبینی وان توی در بیان آن که جنبیدن هر کسی از آنجا که وی است، هر کس را از چند وجود خود بیند، تابه کبود آفتاب را کبود نماید و سرخ سرخ نماید. دید احمد را ابو جهلو بگفت زشت نقش کس بنه هاشم شگفت گفت احمد مرو که راستی راست گفتی گرچه کار افزاستی دید صدیقش بگفت ای آفتاب نیز شرقی نیز غربی خوش بتاب گفت احمد راست گفتی ای عزیز ای رهیده تو ز دنیای نچیز. حاضران گفتند ای صدرالورا راستگو گفتی دو زدگو را چرا؟ گفت من آینم مسقول دست ترک و هندو در منان بیند که هست. ای زن ار تمام میبینی مرا زینتهری زنانه برترا. آن تمع را ماند و رحمت بود کو تما آنجا که آن نعمت بود امتحان کن فقر را روز دو تو تا به فقر در غنا بینی دو تو صبر کن با فقر و بگذارین ملال زن که در فقر است عز زلجلال سرکه مفروش و هزاران جان ببین از قناعت غرق بحر انگبین صد هزاران جان تلخی کش نگر همچو گل آغشتان در گل شکر ای دریغا مرترا گنجا بودی تاز جانم شرح دل پیدا بودی این سخن شیر است در پستان جان بیکشنده خوش نمی گردد روان مستمع چون تشنه و جوینده شد، واعظر مرده بود گوینده شد. مستمه چون تازه آمد بی ملال، صد زبان گردد به گفتن گنگلال. چون که نامهرم در از درم، پرده در پنهان شوند اهل حرم، ور در محرم دور از گزند، برگوشاوی اندان ستیران رویبند بند. هرچرا خوب و خوش و زیبا کنند، از برای دیدای بینا کنند. کی بود آواز چنگ و بم از برای گوش به حس از هم مشک را بیهوده حق خوشدم نکرد. بهر حس کرد و پی اخشم نکرد حق زمین و آسمان برساخته است در میان بس نار و نور افراخته است این زمین را از برای خاکیان آسمان را مسکن افلاکیان مرد سفلا دشمن بالا بود مشتری هر مکان پیدا بود ای ستیره هیچ تو برخواستی، خیشتن را کور آراستی. گر جهان را پردر مکنون کنم، روزی تو چون نباشد چون کنم. ترک جنگ و رهزنی ای زن بگو، ور به ترک من بگو. مرمرا چه جای جنگ نیکوبد، کین دلم از سال ها هم میرمد. گر خاموش کردی وگرنه آن کنم که همین دم ترک خانمان کنم. مراعات کردن زن شوهر را و استغفار کردن از گفته خیش. نچو دید و را که تند و توسن است گشت گیریان گریه خود دام زن است گفت از تو کی این پنداشتم از تو من امید دیگر داشتم زندر آمد از طریق نیستی گفت من خاک شمایم نستی جسم و جان و هرچه هستم آن توست حکم و فرمان جملگی فرمان توست گرز درویشی دلم از صبر جست بحر خیشم نیست آن بحر تو است تو مرا در درد ها بودی دوا من نمی خواهم که باشی بینوا جان تو که از بحر خیشم نیست این از برای توستم این هنین. خیش من والله که بحر خیش تو هر نفس خواهد که میرد پیش تو کاش جانت کشروان من فدا از زمیر جان من واقف بدا چون تو با من این چونین بودی بزن همز جان بیزار گشتم همز تن خاک را برسی زر کردیم چون تو چونینی با من ای جان را سکون تو که در جان و دلم جا می کنی زین قدر از من تبر می کنی تو تبر کن که هستد دستگاه ای تبر تو را جان آزرخوا یاد می کن آن زمان را که من چون سنم بودم تو بودی چون شمن بنده بر وفق تو دل افروخت است هرچی گویی پاخت گویت سوخت است من سپاناخ تو با هر چمپزی یا تروش با یا که شیرین میسازی. کفر گفتم نک به ایمان آمدم پیش حکمت از سر جان آمدم خوی شاهانه تو را نشناختم. پیش تو گستا خردر تاختم. چون افو تو چراغ ساختم، توبه کردم اعتراض انداختم. مینه هم پیش تو شمشیر و کفن، میکشم پیش تو گردن را بزن. از فراق تلخ می گویی هرچی خواهی کن ولیکن این مکن. در تو از من از خواهی هست سر. با تو بی من او شفیع مستمر. از خواهم در درونت خلق توست. زیتماد او دل من جرم جاست. رحم کن پنهان ز خود ای خشمگین، که خلقت بی من انگبین زین نسق می گفت با لطف و گشاد در میانه گریه بروی فتاد گریه چون از حد گذشت و های های زو که بی گریه بود او خود دل شد از آن باران یکی برق پدید زد شرار در دل مرد وحید آن که بنده روی خوبش بود مرد، چون بود، چون بندگی آغاز کرد. آن که از کبرش دلت لرزان بود، چون شوی، چون پیش تو گریان شود. آن که از نازش دل و جان خون بود، چون که آید در نیاز او، چون بود. آن که در جور و جفایش دام ماست، عذر ما چپود چو او در آذر خواست زینه لناس حق آراست است زانچه حق آراست چون دانند جست چون پی یسکن علیهاش آفرید کی تواند آدم از هوا برید رستم زال اربوود و از حمزه بیش هست در فرمان اسیر زال خیش آنکه عالم مست گفتش آمدی کلمین با همیرا می زدی آب غالب شد بر آتش از نهیب آتشش جوشد چوباشد در حجیب چون که دیگ حایل آید اردورا نیست کرد آن آب را کردش هوا ظاهرا برزن چو آب ارغالبی باطنا مغلوب و زن را طالبی این چونین خاصیت در است. مهر حیوان را کم است آن از کمیست در بیان این خبر که اینا هن یغلب نال و یغلب و هنال جاهلا. گفت پیغامبر که زن بر آقلان غالب آید سخت و بر صاحب دلان. باز بر زن جاهلان چیره شوند زن که ایشان تند و بس خیره رووند کم بودشان رقت و لطف و وداد، زان که است غالب برنهاد. مهر و رقت وصف انسانی بود، خشم و شهوت وصف حیوانی بود. پرتو حق است آن، معشوق نیست، خالق است آن، گویا مخلوق نیست. تسلیم کردن مرد خود را به آنچه چه التماس زن بود از طلب معیشت و آن اعتراض زن را اشارت حق دانستن. مرد زان گفتن پوش شد چنان، از ساعت مردن اوان گفت خسم جان جان چون آمدم بر سر جانم لگدها چون زدم چون قضا آید فرو پوشد بسر تا نداند عقل ما پاراز سر چون قضا بگذشت خود را می خورد پرده بدریده گریبان می دارد. مرد گفت ایزن پشایمان می شوم. گر بودم کافر مسلمان می شوام. من گنه کار تو هم رحمه بکن. برمکن یک از بی خوبان. کافر پیر ار پشایمان می شود. چون آزر آرد، مسلمان می شود حضرت پر رحمت است و پر کرم عاشق او هم وجود و هم عدم کفر و ایمان عاشق آن کبریا و نقره بنده آن کیمیا در بیان آنکه موسی و فرعون هر دو مسخر مشیتند چنانکه زهر و پازر و ظلمات و نور و مناجات کردن فرعون به خلوت تا ناموس نشکند موسی و فرعون معنی را رهی ظاهر آن ره دارد و این بی رهی روز موسی پیش حق نالان شده، نیم شب فرعون هم گریان بوده. کین چه غل خدا برگردنم، ورنه نه باشد که گوید من منم. زان که را منور کرده ای، مرمرا زان هم مکدر کرده ای، زان که را تو محرو کرده ای. ماه جانم را سیه رو کرده ای بهتر از ماه نبود استارم چون خصوف آمد چه باشد چارم نوبتم رب و سلطان میزنند مه گرفت و خلق پنگان میزنند می آن تاس و غوغاغ میکنند ماه را زن زخم رسوا می کنند. من که فرعونم ز شهرت وای من زخم تاسان ربیال من خاجتاشانیم اما تیشهت می شگافت شاخ را در بیشهت. باز شاخی را موصل می کند. شاخ دیگر را معطل می کند شاخ را بر تیشه دست هست؟ نه هی شاخ از دست تیشه جست؟ نه حق آن قدرت که آن تیشه تو راست از کرم کن این ها را تو راست باز با خود گفته فرعون ای عجب من نه در یارب بنام جمله شب، در نهان خاکی و موزون می شوم چون به موسا میرسم چون می شوم. رنگ ذر قلب ده تو می شود، پیش آتش چون سیاه رو می شود، نیک قلب و قالبم در حکم اوست، لحظه مغزم کند، یک لحظه پوست، سبز گردم چون که گوید کشت باش. زرد گردم چون که گوید زشت باش. لحظه ما هم کند یک دم سیاه. خود چه باشد غیر این کار اله؟ پیش چوگان های حکم کنفکان می دوی من در مکان و لا مکان چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون به بیرنگی رسی، کان داشتی، موسی و فرعون دارن داشتی. گر تو را آید بر این نکته سؤال، رنگ کی خالی بود از قیل و قال؟ این عجب که این رنگ از بیرنگ خواست. رنگ با بیرنگ چون در جنگ خواست اصل روغن زاب افزون می شود عاقبت با آب زد چون می شود چون که روغن را ز آب استرشتند آب با روغن چرا زد گشتند چون گل از خار است و خار از گل چرا هر دو در جنگ اندو اندر ماجرا، یا نه جنگ است، این برای حکمت است؟ همچو جنگ خرفروشان صنعت است. یا نه این است و نه آن، حیرانی است. گنج باید جاست، این ویرانی است. آنچه تو گنجش توهم میکنی، زان توهم گنج را گم می کنی چون امارت دان تو وهم و ها. گنج نبود در امارت جای ها. در امارت هستی و جنگی بود نیست را از هستها ها ننگی بود نیک هست از نیستی فریاد کرد بلکه نیست آن هست را واداد کرد تو مگو که من گریزانم زنیست بلکه او از تو گریزان است بیست ظاهرا می خانداد او سوی خود و از درون ندد با چوب رد نالهای بازگونه است ای سلیم نفرت فرعون میدان ست کلیم